سلام من به امامم به سید و سلام من به امامم به سید و که ممکن تا و شاهد مقام مناتم که ممکن تا دوی من و شاهد